Up, up, up, واني فارسي بسم الله الرحمن الرحيم جوغراني هجا رزو سلامي امتان باشكاش به خوش خالین لوی کا لبرنامه وانی فرسی دا پیگ دگی امرو محمد دی هوا چند کتیبک بکره. او دی هوا بچه بو گورپانی انخلاب و چند کتیب لباری میجوی ایران و کتیبکیش لباری سعدي شاعری گوری ايراني بکره. او بپيان برو گورپانی انخلاب دکوی تاره که نواندی کتیب فروشیکانی تارانه. كسك لو نزيق دبيت وو عدرسي هوتل لالي ليدا برسي بو اوي كا و تووجهكي اوان ببسين سراتا سرانج بدنا چان وشاو و واجي نوو حول بدان لبريانكا Hôtel La Le, Hôtel La Le, Hôtel La La. Kojast, Kojast, Lequeya. Kami, Kami, Kemek. Joloter, Joloter, Peshter. Bank, Bank, Bank. ملی ملی ملی کنار کنار تنیشت کنار هتل کناره هتل لاتننیشت هتل پارک، پارک باخی گشتی بزرگ بزرگ گوره متشکرم متشکرم سپاس صدکم چند چند چند کتاب کتاب کتب تاریخی تاریخی مجوی من میخواهم من می خواهم من دموه. سمت راست سمت راست لای راست آنجا آنجا اوه. کتاب ها کتاب ها کتابکان ادبیات ادبیات ادبیات چه چه چی آن آن او گوشه گوشه سوچ من دیدم من دیدم من دیتم در مورد در مورد له تاریخ ایران تاریخ ایران مجوی ایران سعدی سعدی سعدی کتاب های زیادی کتاب های زیادی گلک کتب آنجاست آنجاست لویه ببینید ببینید، ببینن، بفرمایید، بفرمایید، فرمون، متشکرم، متشکرم، ممنونم بااززکن استاش نور ای و توژه محمد و کابرای سرنج بدن سلام آقا ببخشید هتل لاله کجاست؟ سلام آقا ببخشید هتل لاله کجاست؟ هتل لاله‌ بله هتل لاله، بله هتل لاله. هتل کمی جلوتر روبروی بانک ملی است هتل کمی جلوتر روبروی بانک ملی است روبروی بانک ملی روبروی بانک ملی بله کنار هتل یک پارک بزرگ هم هست بله کنار هتل یک پارک بزرگ هم هست متشکرم متشکرم خواهش می کنم خواهش می کنم هژ امجاریش یوبو تووجژی محمد و رامین راگرن سلام آقا، ببخشید هتل لاله کجاست سلام آقا ببورن هتل لالکویا هتل لال؟ هوتل ל� بله، هوتل لاله بله، هوتل لاله هوتل کمی جلوتر روبروی بانک ملی است کمک پیشتر برنبر به با بانک ملی است روبروی بانک ملی برنبر به با بانک ملی بله، کنار هوتل یک پارک بزرگ هم هست. بله بخه که گشتی گورش لطنیشت هوتل لالیا متشکرم ممنونم خواهش میکنم تکدکم جو درو راسکن ام جریش گوبو و رامین را گرم سلام آقا من چند تا کتاب تاریخی می‌خوام سلام آقا من چند تا کتاب تاریخی می‌خوام سلام سمت راست آنجا سلام. سمت راست آنجا کتاب های ادبیات کجاست ؟ کتاب های ادبیات کجاست؟ کتاب های ادبیات هم کنار کتاب های تاریخی هستند؟ آن گوشه. کتاب های ادبیات هم کنار کتاب های تاریخی هستند. آن گوشه. بله دیدم بله دیدم چه کتابی می‌خواهید چه کتابی می‌خواهید دو کتاب در مورد تاریخ ایران و یک کتاب ادبی درباره زندگی سعدی دو کتاب در مورد ایران و یک کتاب ادبی درباره زندگی سعدی کتاب های زیادی در مورد تاریخ ایران و سعدی داریم بفرمایید ببینید کتاب های زیادی در مورد تاریخ ایران و سعدی داریم بفرمایید ببینید متشکرم متشکرم گره بارزدکان استا و تواجی محمدو کتب فروشکا با ورگیرانی کردیه و دویسین سلام آقا، من چند تا کتاب تاریخی می خواهم سلام برست، اما چند کتابی می دوی؟ سلام، سمت راست آنجا سلام، بله راست اوه کتاب های کجاست؟ کتابکنی ادبیات لکونه کتاب های هم کنار کتاب های تاریخی هستند، آن گوشه کتاب کان ی ادبیاتیش لتانیش کتاب میجو لو سوچا بله دیدم بله دیدم چه کتابی می‌خواهید چه کتب کدوی دو کتاب در مورد تاریخ ایران و یک کتاب ادبی درباره زندگی سعدی دو کتاب لبارای میجو ایرانو کتابی کی ادبی لبارای زندگی سعدی کتاب های زیادی در مورد تاریخ ایران و سعدی داریم، بفرمایید، ببینید زور کتب من لباره مجوی ایران و سعدی هیا، فرمون، بیان متشکرم. سپاس سپس دکم برزکن، جررک دییک، گله و تووژی محمد و کتفر و به فارسی. سلام آقا، من چندتا کتاب تاریخی می سلام سمت راست آنجا کتاب های ادبیات کجاست؟ کتاب های ادبیات هم کنار کتاب های تاریخی هستند آن گوشه بله دیدم. چه کتابی می خواهید؟ دو کتاب در مورد تاریخ ایران و یک کتاب ادبی درباره زندگی سعدی کتاب های زیادی در مورد تاریخ ایران و سعدی داریم به فرمایید، ببینید متشکرم گوگرانی بارس لیر دا دگین با کوتای برنامه امروی وانی فارسی تا وانی کدی که مالاوه خودتان لکال